دیدین بعضی وقتا وقتی میرین توی چون حالا بحثمون بحث زورگوییه و توی خونه و خصوصاً پدر سالاری و مادر سالاری دیدین میرین میرین توی خونهایی که پدر سالاری اوضا چه شکلیه یعنی همه چیز دقیقاً باید مطابق میل آقای خونه باشه مخصوصاً وقتی آقای خونه مثلا پای تلویزیون نشسته لم داده که دیگه هیچی چیزی واویلاست تصور کنی؟ فکر کنی؟ فکر به درجون گیر میم. بو سلام میشود لطفاً کنترل تلویزیون رو بدید ببنده؟ کنتر تلویزیون مخاجگاه بچه الان فینال مسابقه برترین خواننده بهتر با پشت پرده های جذاب و دیدنی شروع میشه بعد بر... شروع میشه که ده... شروع میشه, شروع میشه. م... به تو چه آخه؟ تو م... در توش نداری مگه؟ آخه دا می من این مسابقه رو از وقتی شرکت کنند به مختلف اون صدای خروسقندی داشتن دنبال میکردم و الان که مرحله آخره م... اگه نبینم کل این مدت که دیدم هم هدر رفته و حیف مییل با بچه اینجا فینا ده... داره تلویزیون نگاه میکنه خود برو ببینم. خیلی بوقخص پدر گرامی و بزرگ بندش شما که دارید ناخون می‌گیرید تلویزیون هم که دارید صحنه‌ای از زندگی ها رو پخش میکنه خب لطفاً ایشون می چی می‌گی ببن... تو بچه‌ دیوونم ب... کردی ب... چرا انقدر تو پروش شدی آخه خیلی... زمان ما بابامون یخ میکرد ما تا یه هفته از اتاقمون جرأت نمیکردیم بیایم بیرون آره ببینم این جوری اشکال نداره من م. خواستم مثل یک پدر و نوبه بشینیم و مسائل رو با هم حل و فصل کنیم اما خب طرز فکر سنتی و واپس گرایانه شما من از این کار شد دیگه. نه، مثل اینکه دلت جدی جدی, اه جدی اه کمر بند می‌خواد تو. الان عرض ام. می‌کنم چند لحظه ماما! مامان! این مسابقه بهترین خواننده برتر زنه شده میشه بابا نمی‌ذاره، نمی‌ذاره بکنه. هی، چی میگی بچه؟ آ، خب شد. ببین کنترل تلویزیون مال تو. چرا مادرتو ما توی این مسایل میکنی آخه بله خیلی متشکرم پدرگی رو میبروی اطلاع تو بکنم تکرار این فیتو پلانیتون رو که داشتی میدیدی فردا صبح هم نشون میدید یعنی دو دقیقه ما این خونه دست تو آسایش نگاه بله البته انگار این خونه مادر سالاری بله چاکم بوده بیشتر برحال اینم یه جورش بود دیگه